آقای رحیمی در مورد فیلم بفرمایید انگیزه شما از این که کتاب سنگ صبور رو که کتاب خیلی موفقیت بود و با استقبال هم روبرو شده بود از این که داستان رو تبدیل به فیلم کردین انگیزتون چه بود؟ نخستین انگیزه این بود که کتاب رو به فرانسوی نوشته بودم خیلی ترجمه هایی که صورت گرفت از این کتاب به فارسی هیچ یک قناعت بخش برم نبود از دیگر این کتاب هم که افغان ها و این داستان افغان ها هم به خانه یا بدانن. و این دلیل بود که یکی از دلیل های مهمش فکر میکنم همین بود که نخواستم بار کتاب به فرانسوی نوشتم ولی فلم به فورسی ساختم. کتاب رو به فرانسه نوشید فیلم رو خواستید خودتون به فارسی بسازید که اون انگیزه شما از اون چه که خواستید در کتاب بیان کنید الان در فیلم با زبان خود نویسنده کتاب به بیننده فیلم منتقل مده. بشه واو. به نظر شما کدوم نکته بود که در کتاب وقتی که ترجمه شده بود به بیننده فارسی زبان به خصوص افغانستانی ها منتقل نمیشد که به نظر شما فیلم این کار رو برای شما انجام داد؟ نخستین چیه بود؟ با... واضحی زبانی که ما به کار گرفتیم در سنگ سبور یک بازی با زبان فرانسوی است مثلا در کتاب شخصت ها نام درست؟ همش با زمیر شخصی او در فرسی ما معنیست مذکر نداریم در فرانسوی چرا؟ و در تمام کتاب مذکر و معنیست این اوم چگونه به فارسی میتونستم بنویسم او کی هست چی هست؟ زن است مرد است؟ یکی از مشکلاتش همین بود فکر میکنم ولی من برای اینکه بازحتر برای کسانی که زبان فرانسه رو نمیدونم بگم که در زبان فرانسه بم شخص مفرد به زبان مزکر معص بیان میشه اونچه که ما در فارسی فقط او استفاده میکنیم همین است و این ترتیب نمیتونستم این داستان و فارسی بنویسسم حرف دیگری یک هم هست. در افغانستان چند درصد مردم کتاب میخوانند؟ متوجه هستید؟ شما برد فیلم رو بالاتر میدونید از اینکه فقط به زبان نوشتاری به دست فارسی زبان ها برسه. ولی در کشورهای ما فیلم رو همه میتونن ببینن بدون از اینکه سواد داشته باشن. این هم نقطه اساسیش بود که بتونم اینو به فیلم اختباس کنم و داست فلم همین داستان رو بگم مورم به فارسی از زبان خود هم نویسنده کتاب هم سازنده فیلم من میخواستم بپرسم که ها رو شما که دور از افغانستان بودید ها رو چطور انتخاب کردید چه, گونه، چه جاهایی به شما انگیزه داد که این فیلم زمانی که میخواد ساخته بشه بتونه به اون سرزمین مادری نزدیک تر باشه خب نخواست که من بعد از سال 2002 پسم آغازش من بیشتر در افغانستان سفر میکردم تا جای دیگه یک ماه فرانسه می بودم بر خانواده یک ماه دیگه افغانستان علاوه و داستانو نوشتم در سال 2005 2006 نخستین شد یعنی که را بهتر به با افغانستان اونجا ای کردم میدیدم با با زنها با مردها در تماس بودم اینجوری نبود که من فقط بینش در فرانسه و همه چیزا فکر کنم و تخیل کنم و بینویسون نه این بازگشتم بعد از 18 سال تبعید در افغانستان رو پیوان داد با فرهنگم با خود افغانستان با سرزمینم با مردمم این اولین بار هستش که نشست فیلم های آسیایی در وضول فرانسه پس از اینکه طالبان بار دیگر به افغانستان بازگشتند حکومت رو به تصرف گرفتند این فستیوال داره برگزار میشه آیا نگاه شما نسبت به سینمای افغانستان اون فیلمساز که چه در داخل چه در خارج فعالیت کردن شما نگاهتون چشمنداز سینمای افغانستان رو با به شرایط کنونی چطور میبینیم؟ بله خب متاسفانه اکثر سینماگران از افغانستان آمدن بیرون یا اکثر در فرانسه یا در آلمان یا در جاهای دیگه دیگه حالا یک سینمای افغانی در طبیعی به وجود خواهد آمد بله متاسفانه فیلمی که من ساخته بودم من فکر میکردم دیگه تمام شد متوجه است ولی این از که برای من خیلی درد آور است که به این که ده سال قبل ساخته بودم باز هم نمایش دادا میشه و انگار که دیروز ساخته خب شما به عنوان یک نویسنده یک سازی که در تبعید بودین از کشورتون دور بودید همونطور که الان هم گفتید 18 سال بعد دوباره به افغانستان این فرصت رو داشتید برگردید آینده افغانستان رو روشن میدیدید اما خب شرایط فعلا تغییر کرده شما به عنوان یک نویسنده پیش کسفت. کسی که دستی در کار فیلم سازی داره و فیلم موفق هم, هم ساخته چه توصیهی میتونید به جوانهایی که تازه پا به این عرضه گذاشته بودن ولی الان در شرایط بحرانی هستن دارید در نخست درکشان میکنم تمام مشکلاتی که اینها دارن ما در سطح که هستم میخواییم اونا رو کوشش کنم که برشان امید ببخشم و معریفیشان کنیم و تولید کنندگان اینجا که بتانند فلم های خود را بسازند از این خاطر است که این مدت شده که از طریق انترنت یک سایتی ساخته نام مشق فلم که در اونجا با صدیق برمک، حسین دانش و یوسف شریفی و نیلوفر پذیرا ما جوانهای افغانه کمک میکنیم که سناریشان صن خود را دربینی و سن روی های شونا رو معرفی کنیم و تولید کنن ما کوشش در سخت خاطر میخواین کار کارو انجام بدیم که بتونیم دوباره از سینمای افغانستان در خارج از مرز به وجود بیاریم که بنابراین فیلم سازان جوان انگیزه این رو داشته باشن که به فعالیت خودشون ادامه بدن آیا کار جدیدی دیگری در دست داری؟ چه رمان چه فیلم کتاب آخر هم همین روز 5 همی بیرون با نام سی سلمان لنوی یا اگر تنها شب که با دخترم نوشتیم از دوم می در اوپرای شهر لیون که اوپرای بزرگیست اپرای من است با نام شیرین که داستان خسره و شیرین و از نوشته نظامی گنجامی رو اقتباس اپرایی کردیم از اون گذشته یک کلیپ دار در ساختن کلیپ هستم در مورد هنر گندهاره و آقای رحیمی خیلی ممنونم با اینکه فرصت کمی داشتید ولی این فرصت رو به بخش فارسی رادیو بین‌الملل فرانسه دادید متشکرم